شرگت کی سودماد جلد دوم فصل دوازده هم. حلقه های وصل اک وصل برای جویندگان مسیر اکنکار جواز ورود به اسرار سودماد است با مراسم وصل است که غیر از قیل خیش حقیر رها شده و به جهانهای آزادی و بقا ابدی داخل میگردد و به اکنکار طریق حقیقت است و شکل نورانی ماهانتا، وایگورو، آن رسول نوربخش و تیرگی های روح هایی که با کلمه رمز خود به آن واصل می شوند، روشنی می و منورشان میسازد. این کلمه برای همه کسانی که طالب روشن در خدا می باشند کاملا سری و شخصی می باشد. های گوناگون در اکنکار وجود دارد که به روح فرصت صعود به درجات بالای رشد معنوی را میدهد. برای مسافرین شاهراه اک، وصل تا حلقه دوازدهم مقدور است. الیکن روح‌های پیشرفتی که در حال آموزش و آزمون برای احراز لقب ماهانتا هستند، می توانند در منازلی بالاتر از این مقامات دوازده‌گانه قرار گیرند. واسطهایی هایی که در عشر حاضر و در جهان مادی داده میشوند، شوند عبارتند از اول آکولایت واصل حلقه اول دوم آراهاتا وصل حلقه دو سوم اهرات، واصل حلقه سه چهارم چاید واصل چهارمین حلقه پنجم مهدیس واصل حلقه پنجم ششم شرادا واسل حلقه شش هفتم باکتی واسل حلقه هفت هشتم گیانی واصل هشتمین حلقه نهم مولانی واسل حلقه نهم دهم سکا واسل حلقه دهم یازدهم کبالشار واصل حلقه یازده دوازده ماهاراجی مهان تا مهارای، واسل و اوصاف سوگمات کل وصلها مجموعا همین است در هر وصل به واسل یک منترای محرمانه و البته مقدس داده می شود که مختص خود اوست و جانشین همه کلمات دیگری که او در تمرینات معنوی اکنکار از آنها استفاده می میگردد این مانترا نباید بر سایرین فاش شود حتی بر اعضای خانواده مگر آنکه وصل به صورت خانوادگی داده شده باشد مثلا بین زن و شوهر و میان پدر یا مادر با فرزند در صورتی که وصل به طور خانوادگی داده شود این امکان وجود دارد که فرزندان خوردسال خانواده متوجه اهمیت کلمه مهرمانه خود نشوند زمانی که این نونه حالان به سنی برسند که به لحاظ ذهنی شکوفا شده باشند و بتوانند حقیقت را بفهمند بایستی این مسئله برایشان توضیح داده شود او دوباره وصل نمیگیرد اما درس می کند که از آن موقع واصل اکنکار شده است و به همین دلیل کلمه ای را که کل خانواده به هنگام وصل دریافت نمودند را تمرین کرده است سنی که می توان در آن کودک را در جریان, وصل، در جریان وصلش قرار داد بستگی به بلوغ ذهنیش دارد به بیان دیگر توانایی درک این مطلب را داشته باشد که در خلال زمان تفولیت وی چه اتفاقی برایش رخ داده است از طرف دیگر اگر بچه در طی سالهای نخستین بلوغ خود و یا در اوان نوجوانی به این مرحله برسد و احساس کند که نمی تواند راه او باشد و آن را کنار به گدارد نمی تواند تصمیم او جلوگیری نمود اگر او میل دارد که از این تعالیم خالص استفاده هد کاملا به خودش مربوط است نه هیچ کس دیگر اما آنچه مسلم است از آنجایی که او واصل اکی شده است نمی تواند اکنکار را ترک گوید هرچند که ظاهرش چیز دیگری را حکایت کند یعنی که وصل ایک را دریافت می کند بایستی از مسئولیتهایش در قبال خود سایرین و بالاتر از همه در قبال اک آگاهی یابد. اگر او انگیزهای خالصانه برای عقد با اک نداشته باشد این امکان وجود دارد که همه چیز برایش وارونه شده و وی را به زحمت اندازد افالیت قضب اولین حلقه اک وصلش را در رویا می گیرد. به سبب آنکه مطالعه ی های اک را در پیش گرفته است، هر قدر هم که در مراحل مبتدی قرار گرفته باشد، پس از شش ماه واجد شرایط وصل می گردد. همانطور که ذکر شد، وصلش در وضعیت خواب داده می که معمولاً برای او واضح است و پس از بیداری می آن را به خاطر آورد. شاید دیگران از چون این بخت و اقبالی برخوردار نباشند و نتوانند چیزی به خاطر آورند اما ایشان واقف می شوند که برایشان اتفاقی مهم روی داده است و به همین خاطر ممکن است یا آن را برای مهانتا استاد حق در قید حیات بنویسند، و یا با یکی از نمایندگان او در میان گذارند گاهی اوقات شخص با اشارات و حرکات بیرونی در زندگی معنوی خود وحس را می جوید. و انتظار دارد که آن را به صورتی واضح و شرففاف در عالم بیرون دریافت کنند اما چون این کسی از روی کنجکاوی وصول به اکرامی جوید یا به دنبال است که با تعلق بر یک از آنها بهرهمند میگردد. اگر او چیزی از اولین وصل خود در وضعیت رؤیا به خاطر نیاورد دچار دردسر زیادی خواهد شد زیرا مسئولیت پذیری عمیقی که همزاد با رشد معنویش می باشد در طی دورانی که وصل یک را گرفته است از راه می رسد شاید چلا زمانی که وصل یک را می گیرد اصلا متوجه هم نشود که وارد قلب زندگی شده است این بدان معناست که او نمی تواند کار را ترک گوید و یا حتی چون این چیزی را بر مخیله راه دهد از جمله محالات است که کسی واصل اک شود و بتواند از آن انصراف دهد مثل که بگوییم کسی که کسی میخواهد از زندگی کردن استفاده دهد. هیچ کس را توان خروج از ات نیست زیرا یک زندگی و زندگی یک است. اما اده قلیلی آن را درک میکنند دیگران نمیدانند که به دنبال چه هستند و از گشودن این رازه سر به مهر محروم میشوند. آنها درک نمی کنند که دقیقا چه واقعی برایشان رخ داده از آنجایی که قادر به توصیف کلامی و گشودن آن نیستند معمولاً احساس میکنند که چیزی عوض نشده است این باعث ناخورسندی شده و آنها با این ایده که چیزی برایشان واقع شده است مشمول اخراج از کل امور میشوند. این خطایی بزرگ است دیریازود آنها خواهند دانست که واقعاً چه چیزی اتفاق افتاده است تنین حقیقی اکنکار از حلقه درونی آن ناشی می شود همه ی عالم آلم می دانند که یک چیزی هست ولی نمی دانند که آن چیست و رغبتی نسبت به فهم آن نشان نمی دهند. آن تا به ابد در پرده مستور است و اکثریت مردم نمی دانند که محتوای اک چیست و پیامش کدام است ذهن ظرفیت اجراک حقیقت را ندارد اصول به این مقصود مستلزم از سرگذرانیدن یک دوره خیش انزباتی است که فرد را قادر می‌سازد که مسیر اکرا دیش گرفته و مراکز عاطفی و ذهنی خود را در تماس با مبدل‌های بالاتر قرار دهد این کل چیزی است که در واسه یک روی می‌دهد اما معدود این را می‌دانند انسان یک ماشین است ماشینی که تمام و کمال تحت نفوذ دست نیمه آگاه خود می باشد. به عبارتی او مخلوق عادت است وس به حلقه اول به وینی آموزد که چگونه از بند همه پدیدهها و از خودش خارج شود این وقتی از نوعی یاداوری می باشد بایستی موقعیت خود را بفهمد او بازیگر ارکان و حواس درونی خود می باشد و همزمان با آن از مختصاتی خارج از خودش بر آنچه که در درونش جریان دارد ناظر می شود. نادرم او تکلیفی دو برابر دارد. حضور در مرکز فعالیت و عمل خواه سفر روح باشد یا غیره و در همان زمان نظارت بر این فعالیت و فعل درونی ذهن بشر در حالت متعارف خود یک ماشین بیشتر نیست و وصل یکم او را نسبت به قابلیت‌هایش هوشیار می‌سازد. اولین گام در راه خودشناسی زمانی برایش رقم میخورد که جهان را به عنوان ناظری خارج از آن ادراک نماید. به بیان دیگر دنیا را آنگونه که واقعا هست بشناسد نه در صورت پوشش ذهنی و توهماتی که تحت کنترل کالبدنجام هستند. از طریق تربیت و ترقی سالک در وصل به حلقه دوم گام نخست به سوی خودشناسی آغاز گردد منزل پایان خودشناسی در پنجمین طبقه، طبقه روح است. این دانشی که او از طریق حواس تحتانی خود کسب می‌کند. انسان در دایره کتاب‌های نگاشته شده علوم حرکت می‌کند. و متحمل تمامی انواع فعالیت های کاذب و فازلانه می گردد همچنان در خوابی عمیق قوتور است که گویی امیدی به بیداریش نیست با حلقه دو در میان این فتنه جهان و نادانی سواران دیار اقتدار در جهان هستند و از به حلقه دوم نقطه است که آگاهی انسانی بایستی تصمیم بگیرد این انتخاب مسیر چلا را تعیین می کند مسیر چپ جادوی سیاه است مسیر راست جادوی سفید بوده و مسیر میانه طریق روح خالص است اگر چلا تصمیم بگیرد که مسیر میانه را به فیماید، از سردی و سیاهی محصول می ماند. اما چنانچه هر یک از دو مسیر دیگر را برگزیند، دیگر ایمه نیست و برای زندگی در اک در قائل ای بیهوده پیچان می شود او در معرض کارما و آفات و عوارض گوناگون قرار می گیرد او انسانی مکانیکی شده و شرایط زندگیش را قانون احتمالات رقم خواهد زد وی در کادر تکامل آگاهانه قرار می گیرد که کاملا در تعارض با تکامل مکانیکی یا جبری است این مسیر تکامل تدریجی با جانشین کردن اختیاری اعمال و کردار آگاهانه صورت میگیرد به اجبار و استرار تنها با تخصیب جبر است که واصل قادر به تکمیل صفات معنوی در آگاهیش میگردد این تغییر ماهیت اولین پله است. و آنان که واسل به حلقه دوم ایکن کار میشوند بایستی بدانند که انزبای از همین جا شروع می شود. بایستی در همین مرحله دست به کار تعدیل پنج عملکرد نفسانی ذهن شود هیچ وقت دیگری برایش میسر نخواهد بود مگر اینکه چنین کند و باز در همین مرحله است که او اولین کلمه شخصی را دریافت می دارد. این کلمه او را، در مقطع مابین وصل دوم و سوم همراهی میکند. او یک آرهات است معلمی که دانش اکرا به آکولیت ها و کسانی که خارج از حلقه ها به سر میبرند آموزش می دهد احرات واصل حلقه سوم است اینجا جهان الیست است جایی که واصل برای زندگی در لحظه حال نظری بر هایش نمی او کلمه شخصی و مقدس دیگری را دریافت می کند که نباید آن را بر کسی فاش سازد. این کلمه اصلی وصل بوده و در تمرینات معنویش مورد استفاده قرار میگیرد و او را در خلقت یک واصل حلقه سوم به آن مناطق علت و معلول میرساند. کسانی که این وصل را دریافت می‌کنند، تحت چرخه نیروهای سلاسه قرار میگیرند تمامی پدیدهها، اعمال، وقایع و جمله تغییرات فیزیکی و روانی در نتیجه عملکرد جاری نیروهای تحت فرمان کلمیرنجان است. این نیروها عبارتند از: سیمای مثبت، سیمای منفی و سیمای خنثا. آنها در باند عاطفی یا وصل به حلقه دوم ظاهر می شوند که شخص بایستی انتخاب مسیر نماید. در وسط دوم این سه را به عنوان طرقی در همتنیده تنیده که به واصل حق انتخاب میدهد. تغییر دائم در سرشت عالم ظاهر است و در همین تغییر شکل بستر لازم برای عملکرد نیروی خونسا حاصل می نیرویی که از طریق آن قواه فعال اک عمل می و بر روحی که راه میانه را برای تکمیل اوصاف خود برگزیده است جاری میگردد با وجود این هیئت ظاهری این نیروهای سگانه ارتباطی مستقیم با رشد آگاهی دارند بدین دین معنی که تکامل آگاهانه در هر حیطه ای فقط به توسط دانش درونی سمت و اما این تکامل همباره به وسیله سوژه های ناشی از انحرافات و اعمال انسانی و به خصوص با عنصر ترس شکوفا شده است رفتار او همیشه با ترس محدود می شود همین دانش در کل تاریخ هستیش قصد تباهی و تنزل او را داشته است اما انسان که به هیچ وجه قادر به تشخیص انحطات بی سراسدا و موزیانه ذهن در اعمال خرافی اجتماعی و به اصطلاح علمی و مذهبی نمی باشند چیزهایی که ذهن او را فلج نموده و ابدا روح را لمس نمی کنند بنابراین وصف به حلقه سوم توسعه اصیل آگاهی را به سوی معنویت حقیقی آغاز می کند وصف به چهارمین حلقه متنازه با منطقه ذهنی می باشد. در این منزل ذهن در نتیجه اشراف بر احساس زمان ماده، انرژی و مکان متحول می شود چون این بینش و شفافی نسبت به این فدیده های طبیعی تحولی چشمگیر در انسان به حساب می آید که با ورود به چهارمین منزلگاه وصل متوجه ماهیت توهمی این عناصر می شود تازه به ساحل تکامل رسیده است چاید؟ واسل حلقه چهارم متوجه می شود که نفخانیات پنجگانه ذهن دشمنانی خطرناک هستند که بایستی بر آنها قلبه نمود مشخصه بارز این باند از آگاهی تفکر است و تکامل اقلانی بالاترین دستاورد یک واصل حلقه چهارم میباشد. باشد اما همواره بایستی به خاطر داشت آنگونه که خیلیها معتقدند، این کمال پاسخ نهایی به زندگی نیست اگر انسان تنها بر افکار متکی باشد به شدت نامراد و ناخشنود خواهد بود زیرا فکرت و عقل فقط منجر به عدم رضایت میشوند. شوند ذهن، آگاهی و عقل عوامل حاکم بر این طبقه هستند نمود بیرونی این جریان تفکر است که تحلیل کارکردهای اک را اهده است و یا آنچه که از نظر اک نشخار ذهنی نامیده می‌شود وقوع این انقلاب اقلانی در وصل چهارم یا طبقه ذهنی گریز از قطب روانی عالم خلقت است این جهان توهمی در فلسفه صورت پوستی تحت عنوان مایا رمز شده است که به معنای توهم است در فلسفه بودیسم اسم مارا و در مسیحیت تحت عنوان ساتان یا شیطان آمده است در مرشتجات اک آن را به عنوان کل نیرنجان سلطان جهانهای پایین می‌شناسیم. ظهور تدریجی مراتب بالای آگاهی از جهانهای ذهنی آغاز می گردن. نادانستگی انسان نسبت به مسائل ماورای این طبقه به کیمیای ایمان و یقین روشن و آشکار می گردن. او اک را آزاد گذاشته و اجازه می دهد که این جریان عظیم در او کار کرده و او را به موقع خود تبدیل به اک نماید این آگاهی روز افسون از حکمت سوگماد است این آگاهی روز افسون از حکمت سوگماد است در این راه امکان خلق توهمات توسط ذهن خیلی زیاد است زیرا تب انسانی نمیخواهد خواهد که منبع اکتسابات خود را از کتابها و آموزشنامه ها تغییر دهد و وارد بر عالم امن و امان درون خیش بشود. او میخواهد مباحث و تفکرات ذهنی را در جنبه مختلف وهمی و آرزی مدخلیت دهد. اینها ایمان و سلامت و روند فکری او را تخریب می‌کنند. او همانند چوب پنبه ای بر امواج بلند اقیانوس قوتور می شود. در ها متلاتم گشته و کنترلی بر سرنوشت خود ندارد اینجا رأس ارتفاعات روانی است و انسان هنوز دچار چار زمان و مکان می باشد او همچنان زمان را در غالب حرکت می شناسد و بر حسب سیر درونی در چار زمان و مکان به همه چیز میاندیشد. آنان که سفر روح را حرکت در اعقاد زمان و مکان میدانند در بر عفوت توهم سرگردانند آنها ارتباطات بیرونی را بر اساس حرکت روح در فضا و محور زمان ارزیابی می‌کنند این اعتقاد کثا که برون از دایره اک به سر می‌برند و ایده ای هم نسبت به آن ندارند منطق و استدلال در کشف حقیقت راه به جایی نمی‌برد همچنین صرف پیروی از قوانین جهان پدیده ها نیز مایه دوری از حق است فقط ات به فرصت می دهد که بالاتر از قلل ذهنی اوج گرفته و به ملکوت رسوخ کند واسل می فهمد که رشد بلوغ آگاهی در اثر تنشهای ذهنی و بیماری های جسمی متناوب حاصل می آید. این به ما میگوید که با تغییرات ذهنی بیماریهای مزمن و عمقی به سطح آمده و برطرف میشوند و كالوت به آرامی خود را با وضعیت جدید ذهنی تطبیق میدهد مهدیس واصل پنجمین حلقه است او به ابعادی فراتر از جهانهای روانی رسیده است به اولین از جهانهای روح الهی که ماهیتش بسیار متفاوت و جدید است انسان در وضعیت معمول ذهنی خود متعادل است هرچند که تعادلی کاذب می باشد. اما هنگامی که با این جهان یگانه وحدت مییابد این تعادل از بین میرود و او بایستی توازنی نوین و حقیقی تر را به دست آورد در خلال اولین هفته ها و ماه های پس از وصل پنجم است که به طریق متعارف سابق خود را به عنوان یک جوینده حقیقت ترک میگوید و قبل از این که به جمع ازما و حقیقی مهدیست به پیوندد بایستی انتظار هر نوع حمله ای را به سوی خود داشته باشد این دوره ایست که در طی آن مهدیست میآموزد که هر کس خواه در خاک و خواه در آسمان خانه ای دارد اما او در مرتبه آسمالوک اقامت گزیده است و دیگر مکانی ندارد که آن را خانه خود بنامد و به همین دلیل است که هیچ کس به جزی یک احیست نمی تواند از سرشت فردی همراه اکیست خود خبر داشته باشد و مشکلاتی که واقع می شوند را بفهمد آینه تمام نمای وصل به حلقه پنجم این است که واصل برای نخستین بار رو در روی آنچه که حقیقت یا واقعیت خداست می ایستد و اگر در آزمونهای زندگی روزمردش مردود شود چه بحثا به جهان ذهن سقوط نماید جایی که قماش ذهن تمامی ایده ها و افکار را قبل از آزاد سازی نشخار می کنند ساکنین طبقه ذهنی با عبارت مقیمان آستان وصف می شوند زیرا این واقعا دروازه ورودی به اولین طبقه روشندینی یا آتمالوک است می توان وصف به حلقه پنجم را دگردیسی نامید این استحال زمانی رخ می دهد که ذهن کاملا تحت کنترل در آمده و با مهور قرار دادن فردیت متعادل می شود و به این ترتیب فروغ روح و نور آتمالوک همراه جریان صوتی اک ذهن را از ظلمت و کسرت رهانیده و سیغلش میدهند تا بتواند هویت فردی را تا به ابد به عالیترین درجات معندی برساند از این نقطه به بعد مهدیس از اشراقیون است او دیگر فقط حقایق معنوی را می و می داند. از وجود آنها در اطراف خود با خبر می گردد و معیار موفقیت و شکست برایش تغییر میکند. او جواره روانی و گیرنده های درونی خیش را در راه علت عظیمتری مورد استفاده قرار می دهد. اینها اندر میان حواست معنویش نهاده می شود تا به صورت عملی در راه پیروزی و پیچیدگیهای فنون این جهان و برای کل نژاد بشر و وجودهای تمامی طبقات کائنات خداوند به کار گرفته شوند. آنگاه که ذهن و کل متعلقاتش در شکل آدموش آن زیر تسلط روح فردی درآید، انسان جدیدی متولد می شود او حالا در سفه به حاکمیت روح سیر می کند و می تواند کل حیات را از این جایگاه شکوهمند و رفیع نظارهگر باشد. در این زمان آگاهی او بر طبقات معنوی حلقه پنجم متمرکز شده است و به آغاز به سازماندهی زندگی از این منظر جدید می نماید. این نوعفرمیی آگاهی قدیم است: آن ارتباطی به سیستم های تشکیلاتی، مراسم، آینها و شعائر مذهبی ندارد. بلکه وابسته به تحول شخص تا مقامات جهانهای بالا می باشد تمرینات معنوی که با مانترای شخصی و ویژه در این درجه وصل داده می شود راههای بدی ای را برای دایر نمودن الگوهای فکری یا تعادل افکار و احساسات پیش پا می این اولین خطه از جهانهایی است که در آنها زمان و مکان مفهومی ندارد این وضعیت بینش تازه را در مورد وصل و صعود به جهانهای بالاتر به فرد القا میکند. شرادا واصل حلقه ششم یا الاخلک است این وصل مترادف با فنای کامل و منتهای رنج است و بیمناسبت نیست که به این مرحله منزل درد و ناکامی گفته می شود در خلال این وصل است که سالک بایستی همه تعلقات زندگی خود را رها کرده و حتی جانش را نیز پیشکش نماید. اگر آکولیت و یا حتی واصلین حلقه پنجم از آنچه که در اخلاق پیش رویشان قرار میگیرد خبر داشته باشند، چه بسا در همان نقطه از ادامه طریق انفراف دهند. تا قبل از اینکه به وصل ششمین حلقه درآید، بارها توسط ماهانتا استاد حق در غیل حیات مورد آزمون قرار گرفته است او آنقدر در روح قوی شده و اوصاف وجودش تابدان پای گسترش یافته و دانش درونی برزش گذاری هایش جا تغییر کرده است که از همه آنچه که اک برایش مقدر میسازد استقبال نموده و مشیت آن را جاری می سازد. و غم سود و زیان برایش بیمعنی است پس از وصل واصل می تواند آگاهانه با اساتید اک و وجودهای طبقات مختلف همکاری کند دانش او در باب کائنات خدا همواره روب رشد است حالا آن را می که سراسوی کیهان مادی تا جهانهای خالص خدایی کشیده شده است او یک انسان کامل معنوی شده است چیزی که زندگی های بیشمار را به خاطرش سرف نموده است اما تا لحظه ای که توسط ماهانتا استاد حق در غیر حیات انتخاب نشده بود نمی‌توانست توفیقی در این راه به دست آورد و یک شراده شود. او دیگر به چیزی در جهانهای مادی و روانی نیاز ندارد و حالا خود را بیتون و چرا تسلیم ماهانتا استاد حق در غیر حیات نموده است همه دغدغه و تنها شغل او خدمتی است که با رقبت و بی‌گلایه و تردید از مجایای حضورش انجام می‌دهد. موصل حريقه هفتم باکتی با نام دارد. او سر در دریای عشق خالص فرو برده است. در اینجاست که او همه چیز را تسلیم کرده و چیزی برای خودش نگه نمی‌دارد. اینجا جهان سکوت است. زیرا نیروهایی که او را به این نواهی دوردست آوردند حسن دریده گشته و رفتند او تنها به نام ماهانتا استاد حق در قید حیات و به نیت خدمت به او سخن گفته و عمل می کنند به جز این او انگیزه دیگری برای زندگی در این عالم ندارد حالا او مختار است که آیا بقیه راه در طی طریق اکنکار را ادامه دهد یا خیر. تا قبل از اینکه به حلقه حقیقی استادان نظام وایراگی به پنج وصل دیگر برای او وجود دارد در این منزل او از مرحله عرفان نیز فراتر رسته است مکتبی که اصل و پایش در این خلاصه می شود که خدا با نفی و انکار بهتر شناخته می شود و ما بیشتر در مورد اینکه خدا چه چیز نیست او را می شناسیم تا چه چیز هست این حقیقت تمامی نوشتجات ارفانی است اما در اینجا شخص متوجه می شود که هیچ یک از وصلهای مذهبی و اسرالی نمی حتی با یک وصل کار برابری نمایند اما هانتا استاد حق در قید حیات تنها وجود زنده این عالم است که با خدا استبات حقیقی دارد در اینجا واسل آغاز به تجربه آگاهی بیواسطه می نماید این است که حواس ذهنی و شبکه منطقش نمی توانند به او بدهند این تجربه به جرگی کلام و مفاهیم نمی آید بلکه حواست غیر قابل وصف معنوی شناسای آن می باشند واصل فهمیده است که با تسلیم پیش نفنها در برابر زندگی مقاومت نمی کنند، بلکه به همراه آن در فعالانه پیش می روید. او به سان شاخ است که در زیر بار برف زمستان خمیده شده است ولی مقاومتی نمی کند بلکه خود به خود در زیر سنگینی برف خم می گردد تا برف از سر و رویش زدوده شود. به لطف اعتباس با ماهانتا استاد حق در غید حیات مطیعانه پذیرای بار مسئولیت های زندگی می شود او حالا میداند که همه این بارها و فشارها به واسطه ثقلشان از میان میروند. واصل حلقه هشتم است. در این مقام او بر سر جروحی ابدیت ایستاده است. زیرا هم میتواند خیش را وقف ماندن در زمین کرده و به تکمیل و پیشرفت انسانیت کمک دهد و یا اینکه به طبقات جرون گذار کند. به توسعه معنوی ساحتی که خارج از این سیاره و حتی مبراء جهانهای روانی است و در نواهی خلوص معنوی در تپش می باشد. اگر او به جهانهای باقی میل کند و خود را در آنها مستقر سازد نهایتاً باز هم مجبور است که به جهانهای خلق و امکان رجعت نماید زیرا با رسیدن به خانه نهایی تسبیه معنوی سوبماد او را برمیگرداند تا به بشریت و یا به آن دسته از وجودهایی که در یکی از طبقات کیهانهای مخلوق ساکنند کمر خدمت ببندد از این پس او استراتژی خیش را در مسیر استادی مستقیم کرده است و هیچ راه بازگشتی ندارد زیرا حیات او را گوش کشان به سوی کمال مطلق خدا میبرد. او در درمی‌یابد که در نردبان ردهبندی معنوی خدایان زیادی وجود دارند که با سوگماد آن اصل و علت تامه جمیع موجودات پایان می‌یابند. به عنوان یک گیانی او نمیتواند به جز اطاعت از اراده ماهانتا استاد حق در قید حیات کاری انجام دهد. بدین مفهوم که او سالک خالصی است که در مسیر اک به این ناهیه دوردست رفیده است و دلاطلبان همه زندگیش را با عشق و اشتیاقی شدید برای خدمت به ماخانتا استاد حق در قید حیات وقف کرده است. معمولا در ابتدا اندوهی از این دارد چرا که جهانش زیر و بر شده و واقعا احساس می‌کند که هیچ کجا در این جهان جای او نیست چون که در مقایسه با او همگان یا در خوابی عمیق فرو رفته و یا مردان واصل حلقه نهم مولانی نامیده می شود مولانی کسیست است که قدرت وضع قوانین و کار کردن با ارتشات حاکم و تمامی فازهای سیارهای حیات به وی داده شده است البته در به ورود به مرحله تحول حلقه نهم نمیتواند بفهمد که این به چه معناست اما تولی نمیکشد که قوای ذهنیش این مقصود را درک می‌کند. او با پشت سر گذاشتن آموزش‌های علم بصیرت معنوی را در اختیار گرفته است. و الزامن جلوتر از آهاد بشر قرار می‌گیرد. او با نظاره از موقعیت رفیع خیش، می‌بیند که تاریخ نژاد بشر در گذشته، حال و آینده بازتاب الگوی کارمی که ایشان است. مولانی با ارواح سیارعی، بیواها، پروردگاران، افاتید و واصلین پایینتری که در حال کوشش بر سر رسیدن به ارتفاعات دورخشان اقیانوس عشق و رحمت هستند، کار می‌کند. مولانی در هر اصری طلایه‌دار نژادی است که در سلسله مراتب معنوی در درجه‌ای پایینتر از وی واقع شده‌اند. او رنج کشیده خود را قربانی نموده است و خیش را زرزوار به اک و ماهانتا استاد حق در غیر حیات سپرده است او پیش ابناع بشر است و بایستی برای پیشرفت و شکوفایی های انسانی منصبی را بپذیرد از لحظه ای که رهرو منزل چهارم وحس را پشت سر نهد زیر زربین اساتید وایراگی قرار می گیرد. زیرا یکی از معدود منتخبی است. معالاً به سربلندی شرفانگیز طبقه نهم سعود می‌نماید. از ایتی که یک مسئولیت پذیری مضاعف را برای او میآورد به طوری که نمی‌تواند از آن شانه خالی کند. مولانی کسیست که از همه چیز به خاطر همدلان هستی خود می‌گذرد و رو تکلیف شده است که به خاطر آنها به شود و در زندان جهان همراهشان باشد. واصل نهم هم به جز انجامه چون این مشغله دیگری ندارد واصل حلقه دهم هم آده پی می باشد این وصل به هسته خلد الهی است که با آنچه که از طبقات پایین تر دهم ده به پایین جاری است به طور فاحشی اختلاف دارد این خلد خالص است نه خلدی که مکتوبات علمی جهانهای پایین اصناف های مقدس روحانیت بدان پهلو میزنند آن خردی افزون از ظرفیت انسانی است تا زمانی که شخص به حلقه جهان متصل نگردد درکی از چگونگی آن نخواهد داشت هیچ واسطی آموزشهایش را نسیه نمیگیرد به خصوص در حلقه دهم زیرا درونش مشتعل از شراره معنویت حقیقی است و او را به کشف حقیقت میرساند و دیگر میداند که تنها وجهی از زندگی است که ارزش زندگی کردن را دارد. هرانچه تحت عنوان خرد الهی در جهانهای مادی شایع است، تماما غلط و کم عیار است. مگر آنچه پیام اکنکار باشد. کسی که به وصل حلقه جهان هم میرسد، رهروی نیکبخت است. زیرا این آنامیلوک است که کلمه هیو هیومی باشد و جامعه جمیع خوبی هاست. موسیقی آن صدای گرداب هستی است، همه نور از صوت که خرد را جرعه جرعه در کام واصل میریزد. چون این فرقی که بتواند زندگیش را در این جهان جدید بنیان نهد به جهانهای وحدت و قماش حقیقی سوگماد واصل شده است. زندگی بخش ابدی فقط سوگماد است و بس. و زمانی که شخص به این طبقه می می‌رسد، بایستی جهت حقیقی را بشناسد آن طریق سریر خدایی است اما خود راه نیست و همین زد و نقیز است که منشأ وقوع خیرد حقیقی بر واسطان دهم یا مرتبه آنامیلوک می شود حالا او حکمت سه اصل بنیادین اکرا درک میکند اول اینکه روح جاودان است آن را نه آغازی هست و نه انجامی دوم اینکه که مسافر طریق والای شهر اک همواره در طبقات معنوی جای دارد و سوم آن است که روح پیوسته در حال زندگی می کند. آن نه گذشته ای دارد و نه آینده ای واسل حلقه یازده که والشار شار می باشد این لغا به جهان سودماد مرتبه والای خدایی است که در آن عده ای قلیل آن هم اگر بتوانند وارد می شوند آن جهان صدای بی صدا، صدای صوب است که از گرداب حیات به بیرون جاری است صوت آن موسیقی کیهانی است در اینجا حیات در اطراف فرد میرقصد و هر آن چیزی که داخل آن می شود را به خلوص و مسرت تبدل می دهد. این جهان تولد دوباره می باشد. اینجا سرزمین صوب است این تولد دوباره همان کیفیت خداشناسی است. بلند اقبالانی که بدین ارتفاعات ملکوتی میزنند دو وجه خداوند یعنی عشق و فرد را شناسایی می‌کنند. این تولد مجدد آگاهی از خدایگونه بودن روح است. برای این تولد مجدد در سوگمد، وجود یک راهنما حتمی است. فقط ماهانتا استاد حق در قید حیات می‌تواند قبای هدایتگر معنوی را تن کرده و واصل را به این جهان آرامش و ایمنی برساند کبر و سرگرانی رهرو را از هر گونه گشایش معنوی دور می‌دارد و به همین دلیل واصل بایستی در نهایت افتادگی وارد بر شعن این عوالم قدسی گردد با فرود آمدن در بلندای جهان یازدهام یا جهان سوگماد بر جوینده مسلم می شود که ا قابل بیان نیست زیرا آن آغاز و پایان زندگی است اک از آن است و مترجم ارادات و پیام‌های می میباشد تمامی قدرت اک از همین سعت به بیرون تراوش می‌کند که واسل در حلقه دهم ده فرا گرفته است اما در اینجا او با اصلی آشنا میشود که این مبانی سگانه را تحت شعا قرار می‌دهد و آن میگوید روح از این روح هستی دارد که خدا به آن عشق می فرزد. حالا خرد و عشق آلمگیر این اصل آخرین اکنکار را مشاهده می کند و به طور مستمر برای تمامی وجودها و سیارات کیهان خدا کار می کند واصل حلقه دوازده مهارجی نام دارد که استاد حق در غید حیات است ولیکن هنوز ماهانتا نشده است او اوستی است که کالبد دارد اما هنوز تاج قدرت را بر سر ننهاده است این شکل و کالبدی است که زمینیان آن را میبینند و صدایش را شنیده و پیامهایش را دریافت کنند. قالب ظاهری او ابزاری است که مردم قادرند به زبان نوشتاری با وی مخاطبه نموده و دیسکورسهایش را بخوانند در راه گذر این وصل بر حکم میشود که خودش انرژی نیست بلکه انرژی الهی را در تمامی جهانهای خدا کنترل کرده و جهت میدهد. این مرتبه محصول نهایی تحول معنوی در زمین است که به واسطه خیش و دنبال روی از ماهانتا استاد حق در غیر حیات حاصل میآید و او را برای همیشه آزاد می کنند. چه بسیار زمانهایی که او زیر نفوظ شخص دیگری درآمده تا و در چندین زندگی هیپنوتیزم شده است و به واسطه این کشش در همان دوره و همان محیط متناسق شده و زیر نفوذ دیگران باقی مانده است اما چنان چه فرد هیبنوتیزم شده در غالب یک چلا و با اخلاص و ارادت ماهانتا استاد حق در قید حیات را به پذیرد دیگر در بند تلسم کسی نخواهد بود واسلین دوازدهمین جهان قادرند همه تلسکوپ‌ها و کشش هایی که توسط دیگران بسته شده است را باطل نمایند آنان که به این دیار می‌رفند آغاز به درک این نکته می‌کنند که ایشان رهبران جامعه معنوی اِت هستند و در حقیقت استاد شدهاند و توسط اعضای پیکره نظام برادری وایراگی به عضویت در این آستان شکوه و عظمت می می‌شوند دو بست دیگر نیز در ایک وجود دارند که سری بوده و نبایستی فاش شوند اولین مهانتا مهارای واصل حلقه سیزدهم، هم و دومین دو آن مهانتا استاد حق در غیر حیات است هیچ کدام از آنها اسرار وصل خیش را بر اهل زمین آشکار نمی سازند و جد و جهدی بی است که بخواهیم بفهمیم آنها در جهانهای خدا به چه کار مشغولند مهانتا استاد حق در قید حیات وای می باشد که با احراز این لقب معنوی کائنات خدا را منور می سازد او از پنج تا هزار سال یک بار ظهور می کند وی نهایی سراورده نهایی اکست که با آلایش جهانها آنها را در برابر تمامی حملات و تخریبهای کل نیرنجان محافظت می کند او همواره در طول دوره خود به خاطر عدم تفاهم به وسیله چراهایش به طور اخص و کل نژاد بشر به طور اعم طرف جور و جفا قرار میگیرد آزار می شود و مشوش می گردد. هیچکس اهمیت حضور او را درک نکرده و کوچهترین تصوری از حقیقت وجود او به عنوان ناجیه نه فقط نژاد بشر بلکه تمامی زندگی ندارند. حضورش کیهانی اهمیتی ندارد که در کجا زندگی میکند؟ او میتواند در جای جای حرم کائنات حضور داشته باشد فرق است میان موهاراجی که استاد حق در قید حیات است و ماهانتا نیست و موهانتا که آگاهی ناب معنوی بوده و نماینده حقیقی سوگمال و تجلی او در کیهانهای خداوند است و در یک کلام خود آن است مهاراجی فقط در کالبد زندگی میکند. با صاحب آن قدرت معنوی که ماهانتا در اختیار دارد نیست زیرا ماهانتا وارث عصای قدرت اک است ولی ماهاراجی تنها نامزد احراز این مقام است این اساتید معنوی در خط نظام خودشان فعالیت دارند و در گیر گروه های مذهبی و فلسفی نمیشوند. اساتید اک از یک خانواده معنوی پاک و اصیل هستند که به هیچ عنوان در زمره مذاهب قرار نمیگیرند. کالبد جمعی واسلین برای یک علت تام کار می کند. تا به ماهانتا استاد حق در غیر حیات در ترویج پیام اکنکار در همه جهان ها و من جمله کیهان فیزیکی یاری دهند هر واصلی خود یک مجراست نه یک واسطه معنوی بلکه چشمه است که از طریق آن قدرت اک در جهان می جوشد قدرت را توضیح می کند تا همه کسانی را که هنوز توسط انوار اک لمس نشدهاند ترقی داده و نورانی نماید چهار نظام در حیعت جمعی واسلین اک وجود دارد که هر واصلی می تواند در آنها سهیم شده و زنار خدمت به ماهانتا استاد حق در غیر حیات و خدمت به اک را برمیان بندد این نظام ها عبارتند از نخست آرا مارک، نظام تدریس در این مسیر واسلین خدمت معنوی خیش را در قالب معلم کلام اک به انجام می رسانند او با انتشار پیام اک بر آنانی که مایلند بیشتر در مورد آن بدانند برای علت والای اک کار می کند دوم اکتی مارگ نظام عشق شخص با کار داوطلبانه در امور اک خدمت میکند او به خاطر عشقش به به ماهانتا استاد حق در قید حیات و اک کار میکند سوم گیانی مارگ نظام خرد خدمت خدمتش را با نوشتن نقاشی کردن و سایر اشکال هنرهای خلاقه در مورد اکن و برای اک ارائه می‌دهد. او با وقف خودش به دیگران از طریق هنرهای خلاقه خودش را پیدا می‌کند. چهارم، واهانا مارگ، نظام تبلیغ. واصل خدا به عنوان قاصد پیام اک در میان توده‌های بشریت به آن تسلیم می‌کند. اینها مبلغین و پیام‌آوران راستین حقایق معنوی اکنکار هستند. این چهار منبع مسیرهای خدمت به ماهانتا استاد حق در قید حیات هستند اما واسل اجبار ندارد که دامنه فعالیت خود را به یک حوزه محدود نماید در حقیقت او میتواند تواند بخشی از هر یک از این مسیرها را برگزیند با اینها بهتر آن است که خود را در یکی از این مسیرها تثبیت کند با این کار واسل میتواند قدرت انرژی و ذهن خود را در یک جهت متمرکز سازد مثلا با انتخاب باکتی مارگ با کار کردن برای فقرا، بیماران و سالمندان ایثار کرده و خدمت کند او میتواند حقیقت اک را در میان نابینایان و نیازمندان اشاعه داده و عشق و شادی را برای معلولان جسمی و عقب ماندگان ذهنی به ارمغان آورد هر واصل اک به اک جریان قابل سماع حیات اتصال دارد و به قدر حقانیت خیش نیروی کمکی برای حرکت اکنکار به حساب می آید. او مجرایی تحت نظارت استاد حق در قید حیات می باشد و مسئولیتهایش هرگز نبایستی ثبت انگاشت شود زیرا هر واصلی میتواند نوری بر جهان باشد